بسم الله الرحمن الرحمن الحمد لله رب العالمين صل الله علی سيدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و دعات دائمت و علی عزائی اجمعین اللهم و فقن و جمعی المشتغلین و الحمد برحمت که عیاء و بحث صاحر و رفایت صاحر این نظر ریشیانی بهتری بشه من تحریبا منحسر این دو نفر تحریبا ارزش کنم جناب آقای قیاس نکلو و سکونی مرده راجیب اینا بیشتر صحبت بشه البته ما صحبت رو روی سکونی بیشتر انجام دهیم چون قیاس خیلی صحبت بداره و هم از همون روزه سکونی هم تحدی روشن میشه از کدیم از کتاب مرموم استاد جلسه سه در ترجمه اسمایل نویزیاد در چند بارا که من یکی از خوبی های کتاقیشان این است که شخص و برایم اون عنوان که در مسادر موجوده میارن ولیکن این نفره با ده عنوان در جه های مختلف پشن هم ندبینم اما یک کار خوبی اگر ایشون میکردن یک جمعوندی نهایی در روایاتش میکردن خوب بود مثلا شما الان روایات سکونی رو بخواهیم به اصطلاح ایشون اون عددی هم که ایشون بر روای چون ایشون مکررات و مگر مکررات تحضیب استفسار ذکر مثل یه حدیث در کافی هم هست در فقیه هم, هم هست در تحضیب هست مالی سکونی یکی ایشون ستا به کردن بله اگر در تحضیب استفسار باشی یکی این فرمینی این کار ایشان فرمینی و هم حال ای که از خوبیهاشون اینه که به همون عنوان رو و روایات رو هم اگر در روایات و همون عنوان ماح این جناب سکونی چندین و خاندان داره، سکونی داره، سکونی شایعی داره، اسماعیل نهال زیاد داره، اسماعیل سکونی داره، اسماعیل شایعی داره، اسماعیل نه مسلم داره، اسماعیل نه مسلم, مسلم سکونی داره، مراهم اسماعیل سکونی داره، مراهم استاد در تمام این عناوینی که بفتهم اسمشون آگوزه، در تمام این انواعی و نوشتم که من یکی اما یه جمع بندی از روایاتش نکردن که مجموعه روایات این با هنوین مختلف چند ساز اینه که از نقاط اشکال بر کلامیشانه اما یه خوبیشان دارن اون خوبی اینه که هر عنوانی که در کتب رجال یا فهرس در روایات آمده اون رو عبردن این کار خوبیه برای مراجعات افراد خیلی خوبه مثلا در درمان ما مراجعات کمپیتری خیلی کار پخته پس در کتاب علمه یک جرس میشه شما باید صابر زهنات اسماعیل ما و در و اگر در ای جز ای این سخونی تنها در جز ای اسماعیل سخونی در جز اسماعیل نویزی ها این باید صابر علمی داشته باشید تا به علمه برگردی اما او تمام عناوین او بودند بعد هم فرانایی متحد با فلان در یک جا هم شرحال دادن کار ایشان به این لحاظ کار علمی و یک کار پخته و علمی و دقیقی اون لحاظایی که دیگه گفتم اشکال بده. بعدم ایشون از رجال امام صادق صادر نعبی بعدم یک روایتم از کتاب کامل زیارات در کامل زیارات خب چند روایت نداره. روایت اول رو روایت کامل زیارات هم آورده از کنم که برد تو من تو ذهنمه، تا این چاپ مثل این چاپ لبنان دستم در چاپ نجف که ایشان داشت تا جرد ثوم تا جرد که از چاپ نجف من دارم ایشان به اصطلاح این رو استخراج نکردن کتاب تفسیر علی ابن ادرانی اما فکر نکنم خیلی چاپ لبنان استخراج شد اینجا نهان برحال ایشون از تفسیر علی ابن ادرانی نروله که نما هست از تفسیر علی ابن ادرانی ما هست این هست یعنی این اشکال در این نسخه ایشان توی چاپ نجر تا جند سه وم اما بن اسمایل ابن مررار یاد هر من این بیدم اسمایل ابن مررار رو ایشون... اصلا اینجا اسمایل ابن مررار رو در اون چاپ نجر توصیح نکردن بعدها این اسمایل ابن مررار رو به خاطر وجودش در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم بله شون اسمایل ابن مررار ندارن بله اصلا هم که با عنوان تفسیر رو تا جهد ثمون خیلی عشیب هم که چاپ لبنان استضاع کرده باشن اشتباه استضاع تا جهدی سروم شاپ نجم استقراض را علی ابن ابراهیم نعمده کامل شده عادتا این اضافه که در تخصیر موجوده حالا در این کتاب نعمده چاپ بعد این چاپی که من دارم چاپ لبنان چاپ سرومه تبعت سالسه دوش نوشتیم اجتمال یک چون که یک چاپ دیگه شده که بله تبعت احتمال بزنید چاپی بعد از این باشه که این تدارک شد این اشتماعات تدارک شده یعنی این کمبودها تدارک شد و ذکر اول علامه که کلاصف قسم با عنوان کان آمی هست که این شخص آمی بوده و ذهر سنت شده این آمی بودن ایشون هم بعدها بین علماء ما محل برد شده چون شیخ در رجال خودش مرمومه العمه در مرغمو شیخ در مردان خودم در فیض سخولی و نجواشی در فهرست هیچ کدوم بیشتر آمیگو بودن نسبت نمی‌کند. بله شیخ در هر ایشان را آمی از کرد. در کتاب اول هم آمده و خوب یاری یاری عمل علام که علام. توستری احتمال سری اهتمام ندیدید چیزی باشه یعنی اون نوکری عوام ما هست مخصص به حرف کلمه هست ما یک عوامت ابن به هم داریم از رباط اساس سکونی هم سکونی, سکونی رجاله بعضی اطفال میگن که ما از این عوام همان عوامت ابن خوشب باشه به هر حال الان بجال برقی رو ما نمیدونیم این تا اینجا در حال داریم اما لو دست صونیا اللهم که چون قبول نداره توقفی داره راجع به این قسم و چه در رجال اعلامت در رجال این داوود افتایش یک تفسیری داره که می شواله وقتی گه نسبتا تا حدی آیه توستری در معدنی رجالشون یه توضیحاتی رو جبیه اینجه هر دادن و نفر هلی از خلاف فیضاله که سرائر که پسل که میراس مجروسی این شازا خواهد آمد که معرومه هلی هم در کتاب سرائر این روایت سخونی او برده فرمده لایو آمد نوع و سر راه به بلاله... اینجورا لاله که نیست سونی بودن این لاله که نیست بودن از به زحمت و سر راه به لاله که نیست بودن شیخ در آدی اند در بعض آن خوییت خبر اند فاهمه ولی آنکه در همین برد ذکر ان ال عملت و رواياتی در روایات خونی عمل کرد و یا غر می‌نواد در همین آدی اند ما یا تلفل اونی که این ماریو اتفرسن حمله در روایه علبه ساخه این بحثی بوده حالا اینشاناللہ چون اوارت و ادران برد میخونیم اشاره میکنیم این از بحثی بوده که ما یک بحثی داریم به نام شهادت یکی داریم به نام روایت یکی داریم به نام تطویم در بحثی تطویم تطویمی فقیقه و حجت در بحث شهادت شادت شهادت عدل و حجت نیست حالا روایت از یکیه. اینا آمدن گفتن در باب روایت در باب در باب شهادت باز عقل باشه در اینجا ادالت شرط نیست رساقت کافیه تقید هم دید ایشو میگه ادالتی که معتبر در باب روایت نه در باب شهادت انما همهل وساقه دره کردیم وساقت معتبره نه ادالت اما در شهادت ادالت معتبره و هم نفس از جواره و مخاله و فل لا یقوم با حجید خبر حالا یا اعتقادشون غلط باشه یا اعمالشون زش باشه این منافی با حجید خبر نداره وستش هده لذاله از آرکوی قدرت الله اینجا شکلی مطلب شیف توسی رو مجمع رو که ما بعد میخونیم این شالا وستش هده لذاله و حالا ایشون تقدیر استشهاد میردن من نمیدارم موردشون از اینجا چون ظاهرش اینه که ایشون میگه اگر از اهل سنت از مخالفین کسی حدیثی نهار کرد و کسانی که عمدشون فاسد بوده حدیثی نهار کرد و اصحاب ما خلافش رو نداشتن حدیث مخالف نداشتن و فتوای مخالف ما نداشتن ما اون حدیث درمان این به دو قیل یکی این که حدیثی کسانی که فاسدن عملا یا فاصلن اعتقادن ما در میان شیعه معارض نداشتو باشه دو تطویه مشهور و خلابشون نباشه پیشون گفتید رو ما قبول میکنیم لما رویانستاده این استشهاد نیم روشن بگرد اونجا به زاره استدلاله اونه عبارتی قدره که استدلاله استشهاد اون روایت اینه به ما رویانستاده علیه السلام قال ادا نزده بکم حادثتون لا تجدون حکمه ما نام، تنظرو رو روح انحریه علیه السلام فهملو ده. و عرض کردیم ظاهر مطلب همون جوی داره اشاره ظاهر مطلب همون جوی چون, چون هم روایات سکونی هن هن هن هن. هم هم ابی هم هم علیه کلوب از که امتراب تو چون قیاسد کلوب هم اون که ما داریم از اصحابه نهمار هم جعبر هم آبای هم ابی هم آبای هم علیه بله تو در ولا اجي ما قلنا عملت طائفه به حرب بن رياض و قياسه بن و نوح بن دراز و سكوني و غيرهم من العامه على امت علي عليه السلام یک مدللیشیش آورده یک روایتی رو نقل کرده و به اون روایت تمسک کرده از ederim ki شماها هم اون روایتی که الان در هیچ جا پیدا نکرده تو هیچ خیلی از کتاب خود اونده شیخ هیچ جا نه بین به نه خود این روایت نه سندش نه و سرش الا هم اینجا کنجامه مطلب دومی که ایشون داره و دلاله که عملت تارمه و حفظ نقیاز هر نقیاز از بزرگان حفظ خیلی جای و قلب پیشون ما. فوق العاده لیکن اونی که ما الان حفظ نقیاز داریم از خود امام صادقه برولیشون قاضی بوده بعد مولده بوده خدمت امام رسیده به عنوان ابن رسول الله و از این حدیث نرکرده از خیلی حضور صده تا حدیث بود این کتاب امسر نریاست تعین شده حضور صده هفتا تا حدیث و از امام سادر این فیلمارا روان علیه میسیم از این اصلا واقعا خود من گاهی وقت گیش میشین که شیخ توجه ها نبرموندن چی شده هست در کتب عقل سنت احادیث هفت سن از علی و بیرالی ازنانی طالب هست اما اونی که الان ما در کتب بهش عمل کردی، روایات هست از خود امان سادره از خود امان چیزی هست که تعمون از انسان وقتی خواب یا نسیه یا مطلقت با لباسش یا متقاب تعمون بکنه که خب یه هفت سب نجاست اینجا این اصلا به علیه هم محسوب نیست انا بیار دیدون مج خب شاید که شما در مقدمات روزین نتیجیش هم شاید بخش <تصفيق> اون نتیجه تاوره افتر مقدمات شما یک شایدی رو در مقدمات میفرمونه در نفیزه هم قطعی میگینه خب نمیشه شاید رو کاشتن در نمیشه شاید که نمیشه مطلب درست کن یکی راجع به هفته قیاسه که ما سردر نمیاریم قیاسه کنه درسته مطلب ایشان درسته البته ا یاس از 4 پنج هزاران نبی البته اینو کلا هم اشغال که بعد اشغال بده بعد از این. و موحد در راشد موحد در شخصیت این شخصیتی بوده خیلی فرد عادی بود در چشم 4 تا که همه از شخصیت شده جمیله دراد نور دیگه در مثل بوده که مثلا فرض این باشه مثلا شخصیت عادی داشته باشه و که اینقدر شخصیت های اجتماعی دارن در خود اهل سنت هر احوالات اینا ذکر شده در مثل تاریخ برداز و حیراب مراجعه کنن میکن بنابراه معروف اصلا نوحب ندراج چیه هست سنین ایسا <تصالت> <تصالت> تسالت> پسر ایشون که منصال ای حاقیت تاریخ ایوب نو ایون هم معروف پسر ایشون نو نوحب ندراج نو این که من ای خود نوحب ندراج هم یخفی امرو از چیه هستیشون اینم باز نفهم مگه مگر با قول شما تنگیه ایناس هم که اصلا سونیانی این شیعه چیه هستی چه ایشون سویش اینجا آوره به این هم ما نمیدیم و سکونی درست و غیره همینال آمنه من این محبتنا این هم باز نمیخوه هم این اشکال اساسی که بین این عبارت هست را با بعد اشاراتو زیر میدن از اون و ایشون روایت رو مورد امام صادر سرموز ادا ندارم بکنم حادث از از اون لا تجرب دونه حکم از ما. و با علی از اون برشون گفته این بزرگوان من الامه هن اینمتنا اگر اینمتنا نقل کرده کرد. با اون مخدمه نمیست داخلی یعنی یک مشکل اساسی که اما ما هنوز نمیفهمیم شیش سوسی چطور این روایت رو عوضه اون استشهاد کرده به روایت سکونی و لاقل الان یاسن کلو اون دو تا که به هم خب این دو دیگه اون در طول این زمان بزرگان ما اصلا نمی‌دونن چی عباراتی که دستی بحث رو کردن. اگه چی گفته؟ چرا و مه در راز نوشتن که اینو به رساله اصلا این یعنی چی عبارت این عبارت این یعنی چی؟ واقعا نمی‌فهمم اصلا شیخ کرد در کرده؟ در ذهنی عبارت نفسه. چون اون روایت این فیما نزاید کنم لازشون و خب نو فیما رویه انا این رویه انا از اون را میگه بجیره من الامعن خب الان میشه دیگه فیما رویه انا یعنی اشیگه دا انا فیما رویه انا دیگه شیعه توش نداره به همه شمیگه فهم رو ادا ماربا و ها ظاهر مارا و با خودشون از را این دوتا هم که ان علیه نرموکن قیاس بنا کلدوب و سکونی ان صادق ان عدیه ان آبایی ان علیه خیلی در اصلا ما میگم حرک نکنم یکی از مشکلاتی که ما در مباست داشته بگشیم خب این واقعا تدریجن سرزمان وحیل بهبانی و دیگر مثلا بعد از قصوری جدید انصافا خیلی تحقیقات و مناقشات خوب میشود در بحث کنی مدرشی میخوند که کارها رو ببین یکی چند کار خود استاد بده از اللهم سره این رو الالآن من نفهمیدم این یعنی چی؟ که عبارت یعنی چی؟ خب الان سرکنیم گرد جعفت انه عبیه، انه آبایی، انه علیه نه همه انهم خوب نه انه رویمز علیه موسیم فنزوب الان ماروه علیه یعنی چی؟ این مارا و اینو نه نه مارا و حوان علیه ما داریم ان علیه نه بود زاهرش این خب زاهره باید که تو این چارکایی که ایشان اسم برده یکیش که شیه هست هفت که ما الان را داریم ان علیه نیست این دوتایش اون دوتایی دیگه هست. ان علیه هست لیکن انره من ان علیه نه دیل از اینکه خودمون اون روایت الان مستر نداره و سند نداره اصلا روایت معنا نداره مثلا من خود من هنوز نمی این روایت چی جور شده ولی و شیخ هم بلکه شیخ و طایفه مثل معار و چطورینی که نماید بگیم شیخ این مثلا حواظ پردودن از تجیب و بله یه روایتی او بوده که بعد زیدش خورش داره بغیر هم من ال امنه عن ما ما عليهم السلام دو تا لال قوی خب اگر این چه کارش نمیخوادش این چی ببینیم مثلا اون با او داره چون آیه‌ی خوی عبارت مرحوم شیخ رو کامل نیاوردن ما ان کامل میاریم اونجا توضیح میدیم به هر حال این اشعال وارده این حالا باید یک جوری درست بشه یعنی جایی بهش اشعال داره احتمالاتی که ما می‌دونیم، این شده هر زمی کنم احتمالات احتمالاتی یعنی یه نیمه خورد. احتمالاً سرگیر. فعلاً که گفت که داره حرف زدن نشون مسکین. فعلاً چیکاری می‌کنم؟ فعلاً گیم. اگر وقتی یوزو نداره اگر ندارد بخوام هادیتون لات جدی دن و خوک ماوی ما رو بیا اند نه تنزو لامارا و هو اندالیه. این دو تا یک دوست، این دو سانهالیان دارند در کتوبه ماهن البته سکونی زیاد و قیاس ابن کردون کم سکونی مستقیمن از امام صادم و قیاس نکلو، کردون توسط اصحاب معمار از ما صادم درست؟ مثلا درسته این مکان همشه هم داری لیکن ان ال احمان علیه ما همون نه مارب و حالیه ماربین و حالیه امام صادر پدر ایشان پدر ایشان تا همین و مومن صادره بر مردوای خوی فرذن و معلومه که ها اولا مرکورین لیس لهم روايتون انا علي علیه ان علی السلام یک توجهی که دادن فمراده همینلی استشهاد پس مراد اینه حال مگه ایشون لیس لهم روايت من یعنی خودشون تریب نداشت یه مراد آقای خوی همون من گفتم فمرادو هو قدرت سر را من لی استشهادی در روايت به و آقای خوی من استشهاد اینجا تکرار این کلمه استشهاد تو عبارت قده استشاد نیست لما رو بیان استاده این اسمش استشاد نیست انما هو جواز العمل و اخبار العامن اضاکان موسوع هم بده و عدم اعتبار لعدالت که حجیت خبر واحد اگر بیشون در عبارت شیخ و دیگر در روزان غرص موده ادالت در روایت معتبر نیست در شهادت معتبره اینکه که عدب اعتبار لعدالت این در حوضیت خبر ادالت شد نید به ساقر یا فهر از خیلی شد پس بنابراین این, این, این هم استظهار آقای کوئی حضرت این استظهار آقای کوئی قدیمه یعنی از زمان تا حالا بیشتر این فهمیدن که شیف اینها رو توصیح کرده آقای کوئی از این راه خوارد شدن چرا شا شاید البته ننوشتن چرا تو زند تو همه اشکال من آمده که اینها رو طریق و اندیم به ط پس مراد شیفتی ای این ها موسوع این مرادش اینه مراد این, این حالا مراد جدیش وقد در رجول وقد اد در رجوله من منحور متحرجون فی روایتی و موسوعون بیه فی امانتی و این کان مختن اصل اعتبار و علیه کانت روایات و حجسن علامان راه البته شد خودشون هم از کردم. یعنی زفت بهتره که نورا کلامانورا این اشاره که این که خداوند رو نشان دیده بسید فیره مجبور بود اصناده به خداست کلامانورا من عدم اعتبار ادالت خجیه و اما عدم و صدوق به ما و از سکونی به روایاته اصلا که آیه خویال در وزن نیده پریدن از روایات سکونی به نار در درآورده ما صابرن میگیم که حالا حساب که کی قبل از انتقال شی انتقال رو باید باشه در چند مورد زیاد نیست شاید ده مورد باشه در کتاب تقریر روایت سکونی رو هم موردش عمل کرده من در فصل میراث میراث مجوس روایت سکونی رو گفته و این روال از سکونی لا افتی به این از سکونی لا یعنی فرد و, و بیر لا ولا یعنی فرد و سکونی به نمزه به این تعبیر اولین تعبیری که مراجع به سکونی داریم عبارت شکل سر رو بده تباید عبارت نید این لا یعنی فرد و بیر ظاهرش اینه که اگر یک مطلبی و سکونی به خناهی وجوده که حمل شیخ که 1 شیخ صدو به شیخ توسی عبارتی اینه که اگر سکنی در مورد یه روایتی داشت و از اصحاب ما معارضش موجود بود اونجا عمل نمی کن. یا روایتی داشت و اصحاب ما فتواشون قرابش بود اونم عمل نمی کن اونجایی که روایت داشت کنی نه روایت می آرد اصحاب ما بود نه و مخالف اسحاب ما بود اونجا عمل نمی اون اونی که به ذهن میاد ب اونی روی که شیخ سوسی گفته موارد انقراض سکونیست دقیق کردیم موارد انفراد سکونیست اما اونی که صدوق ازش میشه موارد انقراض عمل نمیشی اما باید این دوتا عبارت شهر داده رو سکونی آیا کشیویه بازن لایوهن به ما ینفرد رو به شیف ظاهرش یکی یوهن ما اگر از اصحاب ما مععال نداشته باشیم و اگر اصحاب ما قول بر نداشته باشند. و نظام در همین مسئله ای که از یکتر یفتتر رووارد تکومی بر نیاز ذکرد و منکره در اصاب ما م نکرده. اونچه که ااساب معذ ن کردن تو هم سر روشا نداره، یا در به ساحل ضر و به آم اما یفتتر ا لا یا تووب یا این را از ها نرم نگرد منفرد هست این منفرد هم دیازم کنرو این دو تا بستا سنی نهار کردن هلیگه و لذا شیخ هم بخواد دیگه اینجا که اینجوریه اینا منفردن عمل میکنی آیا تفاوت عبارت شهر با سبوب چیه؟ دفر کرد ایشو می اما ادم و افتاق بله فاهوه لا الا عدم رسالته آل خویی فرنده حالا درسته؟ فلعل لا اذا نوکن او میه لا لا انو انه لن فسد رسالته ونده خب شاید شما از میدونی که صدق نیست که شما حق نداری که واسو یه خبر سفره میدونی از چه چیزی میدونی شما لا از اگر assumption که ایشون اصولاً ما از کلام اصلا بحث خبر وارد در دی که انفراد باشه اگه انفراد باشه که خبر واحد نیست مستثنی میشه مثلا. اصلا بحث خبر وارد این بوده یک نفر راوی واحد از صحابه این مسئله از که نفر, نفر. آیا حجیدات نه اصلا عمده این بحث خبر وارد مانه اگر مثلا نو بگه لایو به این خبر تو جدیست حالا امروز مخاطم بیرد بیرد چون این چون دوستم میگرستم اشتای این مسئله بیرم که ایشون اینجا دارن شبیه مسئله تو جرد کرده باشید صدور با این عبارت جرد سر کنید مرموم آرکست مثلا اول دومش همه بوده به مرموم ماهوانگانی خوب هم نیسته انصافا خدا رحمتشون هر به توم دارم انصافا یکی از معاخضات اساسی به کتاب قابل سبتر دهن اینه ها میشه تعاویر غیر مناسب بود به کار انصافا اخلا که شن علمان این نیست کنید ح دهها سال در گروزی الان فلزیات علمات مدرسه ام خورد. اعتماد واقعی داشتم ولی هنگامی که قلم سر این کتاب را من نمیخواهم ارزیابی از کتاب بشه. هر حال نباید اینجا ایشون در اینجا شده و من مخصوصاً در دادم شرکندگان تا قبل این کتاب چاپ کرده اخیراً که بیان کتاب چاپ تلی، وقتی رو داره این اول که که این جهان ایشون میگه چرا جرب نیست هر جرب رو خرمان همزر روان گر جرب شاقودون رو ایشون در کار برده حالا جرب و تنگ شاقودون داره جرب همینید لایه امامل دو ماید ترده داره بود جرب باقرد از یه بحث شاقودون رو حالا آره من ایشون ماید الله علا یه میگم آدم ممکنه هر تمام حرف واژه‌سازی که این آدم جلالت مشخوذ داره خب وقتی میگه لای عمل مایه انقدره جدی که خب لای عمل مایه انقدره نعرش بحث دیگه‌ای که میاد که عبارت صغوث که میگه لای عمل مایه هر یک طرف عبارت شیخ طوسی که یک طرف میگه این که اینو مثلا که صدونی سکونی ات داره که 6اعتعمل تمامقع یا 8 درات این 6 شده حمله در این اتی ما نداده. یه رو زرات این تغییر روات سکوی منحرت بهوی اما اماعمل هم مشهور عمل در کتاب کافی هم آمده تطوا هم بر مشهور حالا اون بعضی از نکات خصوصی تششا لازی میخواانبال بشن. الان اینکه ماکان این بعد این باز توی توضیح نظر بعد کشون میفهمم که علامه در پس اول خلاصه در ترجمه جابر نزدیک جوافی از ابن غزایی تزریف سرکونی رو نقل نکنه نقل کرده اگر نقلایی وجود نداشت و فیروز وایت منو ترجمه کنه این تر. اولا الان نجات نه او که موجود در کتاب ابن غزایی نیست. حالا علامه یحکی وار که من غیر کتاب ابن غزایی. فرق آنها مستر الان این اشکال که این مثلا در نصف قحبای هر سنه اون نصف قحبای هم خیلی از دست الان طریق رسمی به کتاب ببنی غزاری ندارد خوب دقت بگنید ایشون دنبال این حرف هم نبودارد ببین که در آخر خلاصه تورو خودش رو به کتاب اصحاب داره. مثلا طریقش اجازه شو به کتاب نجاشی دارد به کتاب شش ترید خودش رو به مغزاری نداره اصلا نداره فقط داره و غیره ها من الکتب تعدیر ها داره حالا اون کردن غیره ها شامل کتاب مغزاری بشه و اولا علامه چون در آخر کتابش تریدش رو به مساد یا رجالی نقل کرده تریدش رو به رجال نجاشی نقل کرده به کتب شده توسی نقل کرده اصلا تریدی به مغزاری نداره اون آیه قبایل نداری شوند کی ندارن نه که ازمون سهیش داری کی ندارن همش مورسله که سواد ارساله اگر صحبت ارساله همش مورسله اینطور نیست که یکی که مورسل وجود نداردش این تغییری شد هم مجازه احتمال اینه تزیب لعنت سکونی کان آمیان و کان زرق خب مثل این بسیکیشون فعلا شن از دوستان مجازه احتمال اول احتمال دیالوگ احتمال از که میخواد دوست و سالتا من جرد انه احتمال ان یکون المراد بسترکونی غیر اسمایل ابن عویزیات فلعل المراد بی اسمایل بن مهران و غزه و ابن غزاری کما یکی پی ترجمتی او محبوب بن حسان او مهران بن محمد بن عوی نصف این نکل رضاکی و لطن بسترکونی اینا ها اگر سرکون بودن این اشعال ثبا مثل اشعال هم و را ده اگر قبول هم بکنیم این کتاب بله کتاب منصور بن قضاوی است انه لا اثر له لا عدم ثبته ان الكتاب بله ایشون این اشکال کلی داره دارن دیدن دارن فر اشکال استاد اینه که شیخ طوسی در اول فهرست گفته که ابن قضاوی رو کتاب نروشته فهرست و بناگ اینکه بعضی از ورثه ایش طور عتیق دادن بلا ینسخوا اهر اضافه کردن این عبارت تنصح کردن که این کتاب مال ابن خضرهای این ما توزیه هایی که الان داشتیم عرض کردیم اون دو تا کتابی که عاطی زده شده که البته به نحوی خیلی امن شده هستند اینی ای اون فهرست و اصول فتفست مصنفات یکی شیخه اصول الفرس و مصنف این اینی ای که شیخه این کتابی که الان در ما هست کتاب زوافاور مجروحینه سوال مجروحینه یا کتاب زواف یا کتاب رجاله ای ای کتاب این کتابو تاریخنامه اسمش هرچی این شیخه اینم عاطی اون دو کتاب رو بله. احناقل کتابه و غیره ما من الکتب مگر این که بیمون غیره ما شامل این بشه حالا این شهادت سریحی به که این کتاب احتمال قوی داره کتاب به حد استنساخ رسیده اما به حد قراعت برمشایش نرسیده یه نسخه این به دست علامه رسیده احتمال قدیش اینه این اینطور نیست که بگیم کتاب جهلی آثار جهل در کتاب واضح و کیفکان پر طریق و شیخ که طریق صدوق علیه و این کانفیه ما حسین و نیزین نوفلی اینجا وارد این بحث نشدن و که از بزرگان ما بحث شد که برفر هم سکنی توزید مشکل نوفلی داریم لذا روایاتی که سکنی توش نوفلی نیم اونا رو مهمی که تقبول کنیم مثل باید عبدالله نمتیه چون نوفلی توزید نداره مضافه که یک تجریفی امزالی که دیگر نبود آخر اومده در آخر اومده شد و غلاط شد در محلوم استاد میتوانی نه به این کانفی همه حسین نفری در از سقسان الازهن لعنفو وقعه فی طریق جفره محمد نبوده بید در کامل زیارات حالا مایتی در ترجمه نفری اصطلاح و بعد در این همی تشیر از که در این فریقی سروانه آیکویی در نجم نیمیرون چرا شما نیمیرون تانکه نزده برون موارد روایات تقسیر این روانه استخداش نتو بگرار شد هستر این چاپ دیگه گفتی کنید این کتاب هست که اونها داره بله فون نشه لم یک کر طریق رو الان اسمایل نعویدیان البته ایشون نشن راید یعنی این طریق و سبور راید که اسمایل اسماعیل نه اسمایل در ترکم آمان اسماعیل بن مسلم. طریق مرحوم صدوق هم آمده از کردم شرارن و مرارن و تفلارن. طریق قومی ها به جناب آقای اسماعیل بن سکونی. همون طریق به اصطلاح معروف ابراد طریق صدوق هم اینه ابو و محمد بن حسن اینه افنوالی بلی سنده نام دلال ابراد نهاشم نو دقیقا این طریقه به همون موقعی سکونی سمه مشیخ لن یک طریقه بود ناسمایل در ایجاد که مشیخه چون در مشیخه آخر جلد تحضیر استثار طریق خودش رو به کتب نعمل کرده کتب ایش از اونها گرسه لیکن الى اردبیلی سها مرمومه اردبیلی مرا جامعه رو آفد فرده که ان طریقه بولی طریقه شیخ به سرکونی فلم مشکه فهرست در سرکونی ضعیفان و در مشهد نیست او سرانداز با باور در مشهد نیست ضعیف این نیست این هم راجع به کلمات عایق راجع این کلمه آخری ایشان که در مشهد نیست راست این مطلب درسته نه فقط در مشیخه نیست مرمون شیخ سوسی در کتاب تقدیب استفصال مستقیم از سکونی نرمه میکنه بنده این توضیح کردم در مشیخه اصولاً تریفش رو به افراد ورده که از اونها مستقیم نرمه آلوان نداره اصلا مرمون شیخه در تقدیب استفصال رو رو سکونی و نسانه زیاد برده بیشتر همونه در زندگاه کافیه یا از مثال دیگری که از سکونی نفتیم تقدر نکنیم پس ها از نوازال فکره هست سکونی نفتیم اما از خود کتاب سکونی مستقیمیشون نکنیم و این هم برای ما خبتی چون کتاب سکونی کتاب محلوبیه مخصوصاً در زمان ایشان در بغداد هم داور موجود بوده چون نجایشی که معاصر ایشان دیگه قبر تو کتاب موجود بوده دیگه اونی که من فکر میکنم کتاب موجود بوده شیخ نرونه کرده حالا چرا <متصفه> سه و عدم شیخ هم الان فعلا در ها اگر مستقیم از تکوی نرونه کرد شاید بر ما تواقض بیشتری داشت چون نصه شیخ رو با نصه کلیگی یا سبب مقابله میکرده این یه مطلب که مطلب اونشان درسته شیخ در تقدیر استثال مستقیم از تکوی نرونه لازم مربون ابن ادریس که بعدش اشتراح ازم کنه در همین کلاقه سراغت که مثل همین بحث میراس مجلسی که صدوق داره ابن ادریس هم اینجا پرمان اوان صدوق رو میاده میگه لا یو من دمان یعنی اونجا هم تعدیل یعنی فرده ابن ادریس یعنی اول صدوخ راجع به سرکونی اینسان درد شیخ توتسی داره بعدم ابن ادریس داره منچون اینجا چند نشونه‌ای به هم ریخته ما به طبقه انشاءالله عرض می‌کنیم کلماتی که از اصحاب ما دارن راجع به چخونی اینطوری اول شیخ صدوق بعد نجاشی تاش چی نگفته اصلا اون کتاب‌ها هیچ چیز خاصی صحبت عامیونه استبرنار نگفته شیخ طوسی هم در نبات در تفسیر رجا چیز خاصی نگفته بقیه هم چیزی که اصحاب ما صادر بوده یا یعنی. یا علام هم داره که خیلی معطنه بواسطه روشن نیست این آثاری که قبل بود صدوق هم گفته لا از در یک مورد در دوازده مورد تقریبا روایت ایشونو قبول کردن در یک مورد قبول نکرد روایت صدوق نیاورد گفته لا یوم ما هم این توسی هم که اشمولا رو باز می‌خوندیم که ان بعد الله بعد تفسیرش بعد از شیخ توسی خاص مثلا به ارنه ادریس ارنه ادریس ویلا یونا دوما یا کاربرد بعد از ایشون محفره محفر چند جا راجع به سکونی صحبت باری که برد میکنی میشه آتا این مقالی رو نهاردن از این مقالیشون نهارد شده ایشون نهاردن به هر حال داره این شما این رو بردن میکنیم و توفیه که لاده در اینجا که مقوم ابن ادریس از کتار سکونی نهاردن میمونه میرایی هم یک مطلبی داره که واقعا قابل ترجمه است من این کتاب رو به خط خودم نوشتم برای فقط او به خطی که کتاب سکونی رو به نیریتو برای نسخه ای که در انشاء کردن نسخه ابن عوشناته اس ابن عوشناته بذاذ روایت محدثین سیاد حید او دین اگر ترجمه خاصی بود ابن عوشنات و ایشان این نسخه رو نسخه ابن عوشناته صحیحه پسر شیخ سوسی خونده و پدرش نیازه در محضر پدر، و شیخ سوسی در پشت اون اجازه داده کتاب رو به پسرش در کسان که اونجا حاضر بودن و حضر محمد شیخ سوسی اجازه داده و این برای ما با من چون مهمون میشه کتاب خود هم همزه که مرحوم نجاشی میگه برای پیش از آن موجود بوده خود کتاب در این پیش شه بوده اصلا شیخ ختوسی چون اون زمان رأسم بوده کتاب رو حالا کسایی که کارشون نوشتنی نویسی بوده بود دان کرده بوده پیش از خزالایی از از امثال این می‌مانی کتاب رو سکون می‌دهی که از نوشتن از سال که سالی داستان سال بعد سال بعد میاد پیش شه ختوسی و در بالشون می‌کنده یکی نم آخرش اجازه گذاشت اجازه کتاب تجار اجازه کتابت درنده یا که این کتاب معلومه شیخ به دوسی تمام و اجازه داده برای پسر معلومه مفید ثامی ابو علی به سر حسن محمد و منحه در مهد این وجود نسخه پیش معلومه شیخ خیلی عجیبه اگه نسخه پیشه بود واسه ما خیلی اول دیگه این شری میشه نه این شری اضافه بره بر. ما هم میدونیم راست ورده که طبیب شایع ضعیف در مشخه حال کلی جواب در مشخه نیست در مشخه نیست ولی نه قراره که مشخه نیستن تو ترتیب و افتاده نشه نمی‌کنه وقتی مصادر ناراحتونن که که طبیعی نیست دیگه, خب دیگه. لكن شراشتو میدونیم یعنی خود من مرحوم ابن میگه نسخه رو که من در خط خودم نوشتم در قرن شهر اوم نسخه ابن عشناسته که ایشان از نسخه افتر شیخ توسی که قرارن در شیخ توسی شده و شیخ اجازه داده در زهر نسخه خود شیخ توسی اجازه داده اونه که من به ذهنم میاد ولی ام و ایندالله بگرد چون که ایگر از اجازات شیخ توسی مرده ما نجفه نمان برداد احتمال میدن شیف توی برگار کتاب سکنونی رو نداشته به نظر اجازه داشته در کتاب نداشته من در نجب نزخهی از کتاب پیشش آمده خب من اصلا شیفوی 10 سال 11 سال نجب بودن و کار علمی و کخته ای نکردن شیف در نظر کار علمی ندارد شیفی که این هم آثار علمی در رضعه 41 سال انجام دادن تو نجب نداشتن نجب چند تا اجازه از هست و این احتماق، چون تو من شیخه نیست الان که واضحه تو من شیخه نیست از اون جرد برنا چون شیخ این دونه شن. شیخ با پردندانش با ازده از, از اصخابش هستن به نجپ این تأویر که اجازه به پسر ایشون و من حضر و من سمعه من. هو به همون نجپ میخوره من در حدس قویه من با بتواندن تو آقا نول علمه این و من فکر میکنم این اجازه حاله نجپه و چون ابن ادریس حدیث شناس نیست و عرضیابی نمتونه بکنه عمده کار این بود که کاش ابن ادریس اجازه شیخ نرم میکرد تاریخ دسته نمازو این نکته فنی اینجا بود که ای کاش ابن ادریس تا اینجا چه نرم میکرده که این تمام بر شیخه حب شیخ چی نوشته بود؟ اون کاری ما لذا فنیت ابن ادریس هم ما برم می خب بالاخره شیخ برای پسر چی روشتی اون مهم بود. پس آتان اون مهم نارو نقل نکردی ایشان. گفته نصمار اشناسی، اشناسان فرسیم. ما روز که پسر شیخ سوسی است. مهم چون شیخ سوسی وقتی میگه اگر صده از میرونن سن امه و انیر مید. مثلا به اجازتی انفلان، انفلان اون خیلی عرضش داشت. اون ارزش ارزشش رو داره کهش اون ارزش اصلی اجازه اقتصاد فرهنگی این چیزی که بود این نیست ما بد نیست میخوام اینا اما ارزش فنی این کار اون قسمت بعدی بود حالا در زمانمون مثلا کوسکوپی میذارن مثلا میگن این پروتوکوی یا استنسا اون دارم چند صورت رو عادی صورت اجازه تصویر صورتی کردن عادی صورت اجازه باید این نویز اونو نرمی کرد. اگه اون نرمی خیلی خواهده بر ما داشت. اون فایده اصلی رو بود و او می که شیخ روی چی کجا نویشته؟ چون الان واقعا یک مشکه بید. اگه واقعا این کتاب سپونی در خیار شیخ بود خب مناسب و تحضیب رو مستنید از کتاب رو نتایی بکنه. اینکه بهتر بود. شون اینکه از در زیاد و که خواهر موجود بود امانت علمی و بحثت علمی اختصار مستنم از اون عرب کنن برید ابن عبریس هم بکنی این کرده باشه پس معلوم شد که نسخه از این کتاب در اختیار شیخ هم بوده شیخ حتی نسخه رو به بکرش اجازه داده به شهادت ابن عبریس رحمه الله جمیعه هم لیکن متاسفانه خسارس این نسخه الان برای ما روشن میگیم یعنی اون که میشه؟ به اجازه که بیشتر خصوصی میاد. چون کتابت نصیحه اینجا نوشته در داشت فرق نوشته. اونی ایمی هم بوده. که از نظر ایمیل میاد، از اونم خوده. که نصیحتی از فلان فریش میشه که بود و شه کار او علاوه یا و پر اولاد و هواداره و, و, علی و در فلان فریشم اجازه. خوبه. دکه اون دیو اون دیو اجازه شفته. این قسمت و دو مطرح است و نه نزدیک آن ای کاش بعد یسوع را این خیلی تمر واقع نشد خیلی مفید بود فوق العاده برای کار ما ارزش داشت صلی الله علی محمد و آله فرمانده سردارم خوب واقعا الان اگه ارزش اون کتاب یک دو تا از در این جهان که تکرار میکنیم بعد اومدهش کتاب آقای که مثلا کارهایی که شده اینقدر